فصل هشتم اثر موجی عجیب است نه؟ زندگی هر انسانی زندگی بسیاری از انسانهای دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. کلارنس فرشته در فیلم چه زندگی شگفتانگیزی؟ پس از کشف برتری خفیف و تجربه نحوه عملکرد آن در چهار حوزه اصلی سلامتی، امور مالی، ارتباطات و پیشرفت شخصی برایم شگفتانگیز بود که پی بردم حوزه پنجمی به نام شادی نیز وجود دارد. هرچه درباره برتری خفیف و نحوه اثرگذاری آن بر زندگی مردم بیشتر فکر میکردم برایم مشخصتر میشد که اتفاقات بزرگتری در این حوزه رخ می دهد. بعد بزرگتری در برتری خفیف وجود دارد که از روشهایی که می تواند زندگی ما را بهبود بخشد بسیار فراتر می رود. همه حوزه‌های بزرگ سلامتی، امور مالی، ارتباطات، پیشرفت شخصی و شادی یک نقطه مشترک دارند. همه آنها اساساً درباره شخص من هستند. سلامتی من، شادی من، امور مالی من. اما پس از مرگ من چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یا حالا که زنده و سر حال هستم چطور؟ زندگی من چه تفاوتی را در اتفاقاتی که بیرون از ام رخ می دهند، ایجاد می کند؟ وقتی که قدرت برتری خفیف را مهار کنم و آن را در زندگیم به کار بندم، تأثیر بسیار بزرگی در زندگیم می گذارد. اما تأثیر من بر باقی جهان چگونه است؟ خیلی زود پی بردم که تنها شخصی نیستم که این سوال برایش مهم است در حقیقت چه آگاهانه به آن پی ببریم چه ناآگاهانه آگاهانه این موضوع برای همه مهم است. همه ما غذای خوب و رختخواب گرم را دوست داریم همه ما به دنبال مصاحبت و همنشینی با کسانی هستیم که آنها را دوست داریم و آنها نیز ما را دوست دارند. همه ما می خواهیم که شاد و خوشحال باشیم اما وقتی که این موارد بنیادی برآورده شد همه ما یک چیز دیگر نیز می یکی از ارزشمندترین و فراگیرترین انگیزه های انسان این احساس است که حضورش باعث تفاوتی شود، اینکه حضورش در این دنیا آن را به مکان بهتری تبدیل کرده است. انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و این موضوع کاملا با وجود آنها عجین شده است که نیاز دارند تا بدانند در جهان اطرافشان تاثیر گذاشتند. به این معنی که وجودشان اهمیت دارد. اما احتمالا من مناسب ترین شخص برای صحبت کردن درباره این موضوع نباشم. شاید بهتر باشد این بخش از داستان برتری خفیف را شخص دیگری برایتان نقل کند. کسی که علاقه قلبی و واقعی دارد به اینکه برتری خفیف به میراثی جهانی تبدیل شود. او کسی است که برتری خفیف را کاملا میشناسد، زیرا با آن بزرگ شده است. در میان همه دستاوردهای های زندگیام، دخترم امبر یکی از چیزهایی است که بسیار با آن افتخار می کنم. او با برتری خفیف بزرگ شد و از اهمیت انتقال این اطلاعات به افراد جوان و کمک به آنها برای درک این موضوع که انتخاب امروزشان بر باقی زندگیشان اثر میگذارد کاملا آگاه است. من در اینجا از نوشتن دست می کشم و به امبر اجازه می دهم تا باقی این فصل را بنویسد. اولسون کسی که با فلسفه برتری خفیف بزرگ شد مردم از من میپرسند بزرگ شدن با برتری خفیف چگونه بود؟ حقیقت این است که در بیشتر دوران کودکیم واقعا از این موضوع آگاهی نداشتم بلکه فقط خانوادم به این روش زندگی میکرد قبل از بزرگسالی هم همیشه این درک عمیق را داشتم که در این دنیا همه چیز دست یافتنی است به شرطی که هر روز به طور پیوسته و مسررانه. برای دست به آن تلاش کنم. همسنوسالانم را می دیدم که از اهداف بزرگ می و می گفتند آن چیز واقعاً دست نیافتنی است. چرا برایش تلاش کنم؟ من این شانس را داشتم که هرگز مسائل را اینطور نمی دیدم. بیاد نمی آورم که هرگز برای کاری که قصد انجام دادنش را داشتم احساس ناتوانی و درماندگی کرده باشم. زیرا همیشه می دانستم که همه ی کاری که باید انجام دهم این است که آن هدف بزرگتر را به بخش کوچکتری تقسیم کنم و سپس به طور پیوسته بر روی آن بخش های کوچک کار کنم همین موضوع کمک کرد تا این ایده در من شکل گیرد که همه چیز امکان پذیر است و هر کاری که به مغزم خطور کند انجام شده نیست یک بار شنیدم که ویل اسمیت میگفت وقتی که دوازده ساله بود در یکی از روزهای گرم تابستان پدرش یک دیوار آجری را خراب کرد و به ویل و برادر نه سالش گفت که آن را دوباره بسازند ویل به پدرش گفته بود این کار غیر ممکن است یک سال و نیم طول کشید تا ویل و برادرش دوباره دیوار را ساختند وقتی که کار ساخت دیوار به پایان رسید پدرش گفت دیگر هیچ وقت به من نگوی که نمیتوانی کاری را انجام دهی ویل توضیح داد که شما نباید با فکر ساختن یک دیوار شروع کنید بلکه باید با فکر گذاشتن یک آجر به بهترین نحو ممکن شروع به کار کنید و هر روز این کار را انجام دهید و خیلی زود یک دیوار خواهید داشت او هرگز عبارت خاصی را به کار نبرد اما من دقیقا می دانستم که او از چه چیزی حرف می زد؟ از برتری خفیف تأثیر بزرگ و مهم دیگری که خانواده هم در دوران کودکی هم داشت، این بود که در خانه ما هیچ گونه تفکیکی بین خانه و کار وجود نداشت. اگر یکی از والدینم یک تماس کاری داشت، به اتاق دیگری نمی رفت، بلکه مکالمه را درست پیش روی من انجام می داد. آنها من را به جلسات کاریشان می بردند، عاشق کارشان بودند و حد می زنم من هم آن عشق به کار را به تدریج جذب کردم. در دوران دبیرستان مدیر دفتر یک مرکز ماساژ درمانی شدم. برنامه هم به بود که نیمی از روز را در مدرسه و نیم دیگر را مشغول به کار بودم، به طوری که در زمان فارغ و تحصیلی به تجربه نسبتاً خوبی در زمینه مدیریت دست پیدا کرده بودم. اولین بار در دوران دانشگاه بود که من آگاهانه متوجه ترز کار برتری خفیف شدم. اطرافم پر از دانشجویانی بود که همه معدل چهار به بالا از پنج نمره داشتند و نمره آزمونشان در تجزیه و تحلیل مفاهیم واقعا بالا بود. میدانستم که قطعا باهوش ترین با استعدادترین یا خلاق شخص شخصی کلاس نبودم اما با اینکه اطرافم پر از افرادی بود که بسیار با استعدادتر از من بودند میدانستم که با تلاش مکرر و مداوم میتوانم از آنها بهتر شوم و پیش بیفتم. من به انتخاب‌ها و تصمیم‌های همکلاسی‌هایم توجه کردم و به تدریج فلسفه پشت آن انتخاب‌ها را درک کردم. همیشه انضباط کاری بسیار زیادی داشتم و کارهایم را به صورت منظم انجام می‌دادم. البته نه انضباط سخت و اجباری، بلکه نوعی از انضباط که تنها از این درک ناشی می‌شد که شیوه درست زندگی همین است. همانطور که پدرم می‌گوید، آن نوع انضباطی که به طور طبیعی از فلسفه شما پدید می‌آید. پس از چهار سال تحصیل در دانشگاه در مقام مدیر حسابهای بازاریابی در یک شرکت بزرگ خدمات مالی مشغول به کار شدم. یک سال بعد پدرم با من تماس گرفت و از من خواست که اگر دوست دارم یکی از کسب و کارهایش را اداره کنم والدینم مالک یک مرکز آب گرم درمانی بودند که مدیریت خوبی نداشت. بنابراین به خانهمان در تگزاس برگشتم و برای مدتی مدیریت آن مرکز را بر عهده گرفتم. این کار تجربه ای بود، اما طولی نکشید که در مسیری پاگذاشتم گذاشتم که این امکان را به من میداد تا تأثیر بسیار بیشتری داشته باشم. تأثیرات برتری خفیف در حالی که مدیریت مرکز آب گرم درمانی را عهده داشتم، در یک پروژه خانوادگی دیگر نیز شروع به همکاری کردم. این پروژه توجه هم را کاملا به خودش جلب کرد و مجذوب آن شدم. شروع به جمعآوری داستانهایی کردم که قرار بود به ویرایش دوم کتاب برتری خفیف اضافه شوند. هنگامی که در دانشگاه درس میخوااندم ویرایش اول کتاب منتشر شد و نقش مهمی در شروع حرکتم برای آگاهی بیشتر از فلسفه داشت که همیشه آن را کمابیش بدون فکر کردن دنبال میکردم. طی چند سال بعد همانطور که دوران دانشگاه را سپری میکردم کتاب و پیام آن راهش را در زندگی هزاران نفر پیدا میکرد. مردم داستان‌های شخصیشان را درباره عملکرد برتری خفیف در زندگیشان با پدرم در میان میگذاشتند. با این فکر که تماس گرفتن با این افراد و نوشتن داستان‌های آنها بسیار عالی خواهد بود، پدرم کارت ویزیت آنها را می‌گرفت و در کشوی اتاقش نگه می‌داشت. زمانی که برای قبول مدیریت مرکز آب گرم درمانی به خانه برگشتم، آن کشو لبریز از کارت‌های ویزیت بود. با خودم گفتم الان زمان مناسبی برای تماس گرفتن با این افراد و جمعوری داستانهای آنهاست. انجام دادن این کار تجربه جذاب و شگفتانگیزی بود. سرانجام صدها داستان از عمل کرد و تأثیرات برتری خفیف در زندگی افراد مختلف را جمعوری کردم. تا آن زمان میدانستم که نحوه عملکرد برتری خفیف در کسب و کارها چگونه است؟ اما حالا تأثیرات آن را در روابط افراد میدیدم. مثلا اینکه چگونه انجام دادن روزانه کارهای ناچیز زندگی زناشویی آنها را تغییر داده و از وضعیت بد به وضعیتی واقعا عالی رسانده بود یا میدیدم که چگونه به تمامبخشی افرادی که دوچار سانحه شده بودند کمک کرده بود یا اینکه چگونه به افرادی که با افسردگی مبارزه میکردند و نمیدانستند چگونه از شهر آن خلاص شوند کمک کرده بود و حالا آنها میتوانستند گامهای کوچکی را در مسیر درست بردارند و تأثیر آن را در زندگی و احساس روزمرشان ببینند. من هرگز به معنای دقیق برتری خفیف و اهمیت آن فکر نکرده بودم و این تجربه برایم بسیار هیجانانگیز بود عمل کردن در کسب و کار بسیار عالی است اما کسب و کارتان فقط بخشی از شما به مصابه یک فرد کامل است. من می دیدم که برتری خفیف چگونه می تواند به معنای واقعی کلمه زندگی مردم را متحول کند. من واقعا از مدیریت مرکز آب گرم درمانی لذت می بردم اما می خواستم کار دیگری انجام دهم کاری واقعا بزرگ. من کاملا تحت تأثیر داستانهای زندگی آن افراد قرار گرفته بودم و میخواستم کاری انجام دهم که تفاوت بزرگتری را به وجود آورد. بهای موفقیت همیشه احساس می کردم. دلیل اینکه مردم به دنبال پیشرفت شخصی هستند این است که بتوانند کارهای بیشتری انجام دهند بیشتر زندگی کنند، زندگی بهتری داشته باشند با مردم بیشتری در تماس باشند و میراث بزرگتری بر جای بگذارند افرادی را دیدم که به پیشرفت شخصی واقعا زیادی دست یافتند با این حال تأثیرات آن هرگز فراتر از زندگی شخصیشان نرفته است به نظر من این کار فقط وقت تلف کردن و هدر دادن آن دانش است من معتقدم که همه ما با ترکیب منحصر به فردی از استعداد، اشتیاق و بصیرت آفریده شده ایم و به این دنیا آمده ایم تا آنها را به یک سطح بسیار عالی برسانیم هدف برتری خفیف این است که به ما کمک کند تا آن استعدادها، اشتیاقها و بصیرتها را به کمال برسانیم من معتقدم که ما برای یادگیری و رشد به این دنیا پا گذاشت و باید آنقدر خودمان را باور داشته باشیم که سرانجام از پتانسیل درونیمان برای رسیدن به بزرگی و عظمت بهره برداری کنیم و آن بزرگی را با جهانیان قسمت کنیم. اما این عظمت و بزرگی بهایی دارد. هرچه به موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم، به بزرگی و عظمت و فراوانی بیشتری دست میابیم و همچنین در مورد دنیای پیرامونمان مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. دستیابی به عظمت و بزرگی در هر چیزی فقط منوط به برداشتن گامهایی نیست که شما را به آنجا میرساند بلکه منوط به خواست شما برای پرداخت بهای آن است و آن بها پذیری است. قبلا داستان ویلسمیت را برایتان تعریف کردم در اینجا دوباره از او نقل قول می کنم. او مطلبی را گفت که این روزها اغلب در سخنرانی هایم تکرار می کنم زیرا که حق مطلب را به درستی ادا می کند. او میگوید: می خواهم به خاطر وجودم در این دنیا جهان بهتری داشته باشیم. می خواهم که زندگی شغل و خانواده هم معنا و هدفی داشته باشند. اگر زندگی شخص دیگری را بهتر نمی کنید وقتتان را هدر می دهید. فقط با کمک به بهتر ساختن زندگی دیگران است که زندگی شما بهتر می شود. ویل می گوید این موضوع را از مادر بزرگش یاد گرفته است که زمانی به او گفته بود اگر می خواهی اینجا باشی لازم است که تفاوتی ایجاد کنی. در خودم علاقه به این سؤال را یافتم که چطور همه آن دانش، استادی، رشد، پیشرفت شخصی و موفقیت را بازپرداخت می کنیم. با کمک به مردم که نه تنها ارزش بهبود شخصیشان را درک کنند بلکه آگاه شوند که چگونه در نتیجه آن پیشرفت شخصی موجهایی را به وجود میآورند که همه افراد پیرامونشان را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی فراتر از آن اینکه چگونه همه با هم جهان را تغییر می دهیم احتمالا این عبارت انسانشناس معروف مارگارت مید را شنیده اید که گفت هرگز تردید نکنید که گروهی کوچک از شهروندان متفکر و متعهد میتوانند جهان را تغییر دهند. این بینش شگفتانگیز است. اما شناخت ما از برتری خفیف این امکان را میدهد که سخن او را یک گام به جلوتر ببریم. هرگز تردید نکنید که یک شخص متفکر و متعهد میتواند جهان را تغییر دهد. زیرا یک نفر میتواند با اقدامات متعهدانه، پایدار و مداومش اثری موجی به وجود آورد که با گذشت زمان یک گروه متفکر و متعهد از هزاران و حتی میلیونها نفر را ایجاد میکند. موج من دلم میخواست از این ایده ها به شیوهی کاربردی استفاده کنم تا سازمانی را به وجود آورم که انواع گوناگون های قدرتمند و مثبت برتری خفیف را از زندگی مردم استخراج کند و آنها را طوری به کار گیرد که بتوانند در زندگی دیگران تأثیر گذار باشند سرانجام ایده راه یک شبکه اجتماعی جدید به ذهنم خطور کرد شبکه‌ای که تماما درباره پیشرفت شخصی مردم و اثر موجی آنها بر جهان باشد این ایده را با پدرم در میان گذاشتم و از او خواستم که در صورت تمایل با من همکاری کند. او پذیرفت و تصمیم گرفتیم که نام این شبکه اجتماعی را موج من بگذاریم. خیلی زود همه زمینه ها و جزئیات لازم برای راهندازی این شبکه اجتماعی جدید را فراهم کردیم. یک طرح کسب و کار جامع برای ایجاد یک جنبش کامل تهیه کردم و نه تنها بر روی پلتفرم شبکه اجتماعی بلکه بر ایجاد رویدادهای زنده نیز متمرکز شدم. حتی توسعه دهندگانی را برای ساخت پلتفرم شبکه اجتماعی و انجام دادن طرحهای فنی استخدام کردیم. شعار شبکه ما این بود: قبول مسئولیت فردی، تغییر جهان به صورت جمعی. سپس اتفاقی رخ داد که همه این برنامه ها را به مسیر کاملا جدیدی برد. ناگهان یک فرصت جدید مشارکت برایمان به وجود آمد، همان موضوعی که پدرم در فصل پنجم برایتان شرح داد. با خودم بسیار کلنجار رفتم. خیلی دلم می‌خواست که در این شرکت جدید مشغول به کار شوم، اما میدانستم که این کار همه انرژی و تمرکزم را می‌گیرد و هنوز هم واقعاً به دنبال تحقق یافتن رویایم درباره موج من بودم. نمیخواستم اجازه دهم که ایده ای ایجاد یک راه برای گرد هم آوردن مردمی که رویای تغییر جهان را در سر می‌پروراندند، از بین برود. پس از آن فهمیدم هر کاری که به دنبال انجام دادن آن در شبکیه موج من بودم، می‌توانم در شرکت جدیدمان نیز انجام دهم و این دقیقا همان کاری بود که انجام دادیم. با گذشت تقریباً شش ماه از شروع به کار شرکت جدید و همانطور که شرکتمان جا افتاده تر می این سوال برای من پیش آمد که چگونه می توانیم مفهوم اثر موجی را در کسب و کارمان بگنجانیم؟ خیلی زود اثر موجی را زمینه اصلی کار شرکت قرار دادیم. از آن زمان به بعد از این موهبت برخوردار شدم که ببینم رؤیای موج من به وقوع پیوست. البته دقیقا به همان شکلی نبود که در ابتدا تصور می کردم. اما از بیشتر جهات حتی بهتر از تصوراتم بود و توانستم به هزاران و به طور بالقوه میلیون نفر از مردم دسترسی داشته باشم خصوصا به جوان